زهری جمعه قصه کو محمد رضا سرشار یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود و ما به گفته راویان اخبار و ناقلان آثار در روزگاران کهان و در سرزمین افثانه ها شهر قشنگی بود که در اون بوشک ساز مهربونی همراه همسر و پدر پیرش زندگی میکرد بشک ساز شب و روز کار میکرد و زحمت میکشید تا بتونه خانواده کوچیکش رو اداره کنه اما با وجود اینکه همسر و پدر پیرش هم به او کمک میکردند، باز هم درآمدشون خیلی کم بود و زندگی بخور و نمیری داشتن و از همه مردم شهر فقیرتر بودند. و اما روزی بشک ساز گاری دستیش رو برداشت و برای تهیه چوب به بیرون شهر رفت همینطور که میرفت در گوشه مزرعهی چشمش به یک بشکه بزرگ کهنه و شکسته افتاد بشکساز مهربون با خودش گفت حتما این بشکه شکسته رو نمیخواستن که اونو اینجا انداختن بهتر اونو بردارم و به خونه ببرم و ببینم آیا میتونم درستش کنم یا نه تازه اگرم نشد از چوباش استفاده میکنم ساز تو همین فکرها بود که بشکه رو برداشت و اون رو تو گاری گذاشت و به طرف خونهش براه افتاد خونه کوچیک بشکه ساز یه انباری هم داشت که مرد از اون به عنوان کارگاه بشکه استفاده میکرد و وسایل کار و چوبهاش رو اونجا میگذاشت باری او بشکه شکسته رو به انبار برد و زنش رو صدا زد و گفت این بشکه رو از مزرعه ای در خارج از شهر پیدا کردم میخوام اونو تعمیر کنم ولی اول باید تمیز بشه لطفا بیا و این بشکه رو حسابی تمیز کن همسر بشکه ساز اومد و یک سطل آب آورد و جارو رو هم برداشت و شروع کرد به تمیز کردن بشکه اما همینطور که مشغول تمیز کردن دهنه بشکه بود یه دفعه جارو از دستش ول شد و افتاد داخل بشکه ولی قد بشکه از قد زن بلندتر بود برای همین شوهرش رو صدا زد تا بیاد و جارو رو از داخل بشکه در بیاره مرد اومد اما تا چشمش به داخل بشکه افتاد از تعجب خشکش زد و بعد از چند لحظه با هیجان فریاد زد اصلا نمیشه باور کرد این غیر ممکنه مگه میشه زنش که کمی ترسیده بود با خودش فکر کرد که شاید چیز عجیب اتفاق افتاده. بنابراین با نگرانی پرسید مگه چی شده؟ چه چیزی رو نمیشه باور کرد؟ اما مرد چیزی نمیگفت و همونطور بالای چارپایه ایستاده بود و خیره خیره به داخل بشکه نگاه میکرد. نمیدونست خواب یا بیدا، زن که دیگه نگران شده بود چند بار شوهرش رو تکون داد و گفت آخه بگو چی شده من که از ترس مردم بشک ساز بعد از چند لحظه چشماشو مالید و با دقت به داخل بشکه نگاه کرد و بی اختیار گفت پناخ بر خدا نمیشه باور کرد بشکه پر از جارو شده زن با تجب پرسید مگه دیوونه شدی؟ ما فقط یه جارو داشتیم که اونم افتاد توی این بشکه لعنتی مگه چون این چیزی ممکنه مرد با ناباوری و در حالی که سرش رو تکون میداد زیر لب گفت بله بله ممکنه شاید این یه بشکه جادویی باشه چند دقیقه گذشت و مرد همچنان بالای چارپایه ایستاده بود و خیره خیره داخل بشکه رو نگاه میکرد هر از اینکه که به خودش اومد رو به همسرش کرد و گفت حالا با فروش این جاروها ثروتمند میشیم و دیگه از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا میکنیم مرد این حرف رو زد و جاروها رو یکی یکی از بوشکده آورد و به زنش داد زنم جاروها رو گوشه انبار روی هم چید اما انگار خدا با اونها یار بود چون باز انبوشک پر از جارو میشد جوری که مرد و زن از جم کردن جاروها خسته شدن و کمی استراحت کردند وقتی دوباره به سراغ بشک رفتن دیدن که باز هم پر جاروه مرد و زن هر دو خوشحال شدن و به کارشون که جمع کردن جارو و فروختن اون بود ادامه دادند. و به این ترتیب چیزی نگذش که بشک ساز فقیر به یک تاجر بزرگ جارو مبدل شد جرای اون به قدر مرغوب بود که نه تنها در شهر خودش بلکه در شهرهای اطراف هم اسم در کرد گواش گواش بشک روز و تاجر امروز ثروتمند شد و یک خونه بزرگ برای خودش خرید وسایل قشنگی برای اون تهیه کرد باخشه بزرگ خونش رو با گلهای زیبا و رنگارنگ تزیین کرد فوز قشنگی وسط حیات درست کرد و انتهای حیات هم به یک مردونی تبدیل شد و تعداد زیادی مرغ و خروس در اون قرار گرفتند غذای اونها دیگه نون و پنیر نبود اونا بهترین غذاها رو برای خودشون تهیه میکردن و میخوردن و دیگه هیچ کدوم از اونها لاغر و مردنی و ضعیف نبود بلکه آوی زیر پوستشون رفته بود و حسابی چاق و چله شده بودند بله بشکساز فقیر دیگه از یاد مردم رفته بود و جای او رو یک تاجر پولدار شکم گنده گرفته بود مدت ها به همین صورت گذشت تا اینکه روزی یکی از مشتریان همیشه تاجر چون مقدار زیادی جارو خریده بود کیسه ای پر از سکه های به او داد تاجر که از فروش خوب آن روز خیلی خوشحال بود با عجله به خونه اومد و یک راست سراغ کارگاهش رفت. دستی به بشکه زد و گفت بساز جارو بساز بشک جادویی عزیزم بساز تا من پول پارو کنه بعدم یک سکه از کیسه در آورد و با خوشحالی اون رو بالا انداخت تا بگیره اما سکه داخل بشکه افتاد تاجر فوری چهارپایه آورد نگران بود که مبادا افتادن سکه در بشکه جادویی نیروی جادویی اون رو از بین ببره چهارپایه رو کنار بشکه گذاشت و از اون بالا رفت تا سکه رو از بشکه در بیاره اما تا به داخل بشکه نگاه کرد از تعجب فریاد بلندی کشید خب دوستان گمون میکنید چه اتفاقی برای بشکه افتاده بود خب اگه یکم صبر کنید علتشو براتون میگم بله مرد فریاد میزد کردنی نیست این اصلا امکان نداره چه سروتی بله عزیزان دیگه از جاروها تو بشک خبری نبود و بشکه پر شده بود از سکه های طلا از خوشحالی فریاد میکشید از چارپای پایین پرید و شروع کرد به رقصیدن و آواز خوندن همسرش که صدای فریادش رو شنیده بود به کارگاه اومد بیچاره گمون میکرد اتفاقی برای شوهرش افتاده اما وقتی اومد و دید که او داره آواز می‌خونه و می‌خنده، خیالش راحت شد و بعد از اینکه کمی به حرکات مسخرش نگاه کرد گفت ممکنه بگی چه اتفاقی افتاده مرد که بالا و پایین می‌پرید بدون اینکه حرفی بزنه دستش رو داخل بشکه کرد و میون سکه‌های طلا برد و مشت مشت اونها رو در آورد و روی سر زنش ریخت زن تاجر وقتی اون همه سکه طلا رو دید تعجب کرد و پرسید اما اما اینا از کجا اومدن تاجر بلاخره به خودش اومد و ماجرا رو برای همسرش تعریف کرد و گفت از این به بعد ما بزرگترین فروش و زرگر شهر میشیم دیگر تا لازم نیست خودمون کار کنیم نوکر و کلفت میگیریم و فقط دستور میدیم بله عزیزان تاجر دیروز جارو تلافروش امروز شده بود با فروختن سکه ها روز به روز بر ثروتشون اضافه میشد به قدری پول داشتن که نمیدونستان با اون چه کار کنن دیگه حالا حتی خود مرد گذشتش رو فراموش کرده بود و اصلا یادش نمیومد که روزی بشکساز فقیری بوده حالا او با وجود اینکه ثروت زیادی داشت به مردم نیازمند پول قرض میداد و بعد از مدتی اصل پول رو با کلی سود از اون بیچاره ها میگرفت در واقع اصلا رحم و مروبت سرش نمیشد. او به اندازه پول داشت که می‌تونست مقدار زیادی از اون رو به مردم فقیر ببخشه اما گاهی آدم هرچه بیشتر پول و ثروت به دست میارن به همون اندازه خسیستر و بخیلتر می شن. بله او بهرهای سنگینی از مردم می گرفت و فق روتوهی دستی خودش را از یاد برده بود چیزی نگذش که خونش رو عوض کرد و به جای اون یک کاخ بزرگ و باشکوه ساخت. زمین های اطراف کاخ رو با قیمت بالا از مردم خرید و باخهای پر از گل و میوه تو اونها درست کرد خدمتکاران زیادی از جمله آشپز دربان و عرابچی اجیر کرد چون برای نگهداری از کاخ و باخاش به آدم های زیادی نیاز بود فقط تو آشپزخونه کاخ ده آشپز ماهر کار می‌کردند. و غذاها و پیش غذاهای مختلفی میپختند. تلافوش و زنش دیگه فقط تو ظروفه طلا غذا می‌خوردن و چند خدمتکار هنگام غذا خوردن کنار اونها می تا هر کاری داشته باشن فوری انجام بدن. مرد اونقدر پول و ثروت داشت که دیگه حساب از دستش رفته بود. برای همین کشاورهای زیادی در اطراف کاخ خرید و به پرورش گاو و گوسفند پرداخت. البته خودش دست به سیاه و سفید نمیزد و فقط دستور میداد و نوکرها کارها را انجام میدادند. فروش از بس پول داشت نمیدونست با اونها چه کار کنه. این بود که یک کالسکه‌ی شش اسبه بزرگ سفارش داد که درهاش از طلا بود و روی اون رو با گوهرهای زیبا تزیین کرده بودند. طلافروش و زنش با اون کالسکی مجلل و زیبا به مسافرت میرفتند و خوش می‌گذروندن. حالا دیگه آوازه‌ی تلافروش در همه شهرهای دور و نزدیک پیچیده بود و مردم از او به عنوان یک ارباب بزرگ و ثروتمند یاد می‌کردند. در این حال خیلی از مردم به او بدهکار بودند و با وجود اینکه طلافروش ثروت زیادی داشت ولی باز هم از اونها بهره زیادی می گرفت و بهتره بگم که هیچ چیز آتش تمه و پول پرستی مرد رو خاموش نمیکرد. بله بشکه جادوی مرتب برای تلافروش سکه های طلا می ساخت اما هیچ کس جز همسر و پدرش از این موضوع خبر نداشتند به خاطر اینکه تلافروش به هیچ کس اعتماد نداشت و نمیخواست که کسی راز ثروتش رو بدونه از طرفی چون بشکه بایستی مرتب خالی میشد اونا مجبور بودن نوبتی این کار رو انجام بدن اون هم در جایگاهی که زیر کاخ بود در زیر زمین همیشه قفل بود و تنها کسانی که اجازه رفته آمد به اونجا رو داشتن خودش و پدر و همسرش بودن و کس دیگه حق نداشت تا, تا نزدیک در زیر زمین بده و همه خدمتکاران این رو میدونستند. و اما عزیزان با وجود اینکه همه گوشه و کنار انبارهای کاخ از طلا پر شده بود باز هم ارباب بیرحم و حریص پدر پیرش رو وادار میکرد که شبها در زیر زمین بمونه و سکه های طلا رو از بشکه در بیاره پیرمرد بیچاره شب و روز کار میکرد و تازه پسر عریسش، او رو تهدید میکرد که اگه شبها خوابش ببره غذایی به اون نمیده پیرمرد بیچاره گاهی از خستگی خوابش میبود و در نتیجه از غذا محروم میموند. برای همین بود که روز به روز ضعیفتر و لاغرتر میشد و در تنهایی پسر بیرحمش رو نفرین میکرد یه روز پیرمرد که از اوضاع و احوال خودش کلافه شده بود به پسرش گفت پسرم من پیرم و احتیاج به استراحت دارم نمیتونم این همه کار کنم و زحمت بکشم خوبه کسی رو بیاری که برات کار کنه مرد حریص گفت خب پیر شدی که شدی باید زحمت کشید و کار کرد بیخودی که به تو غذا نمیدم داری مفت مفت میخوری و راه میری تازه گله هم داری؟ پیرمرد نگاهی به پسر کرد و دیگه هیچ نگفت اما دلش خیلی شکسته بود برای همین نفرین کرد و گفت خدایا حالا که این پسره با من اینطور رفتار میکنه کاری کن که به سزای عملش برسه دلش رو بسوزون که دل من را آتش زد پیرمرد گریه کرد و دوباره سرگرم کار شد گذشت و گذشت تا اینکه یه شب پیرمرد خیلی احساس خستگی میکرد با بی‌حالی روی چارپایه ایستاده بود و مشغول بیرون آوردن سکه ها بود که ناگهان اتفاقی افتاد. پیرمرد از ضعف و گرسنگی اسهار رفت و از روی چارپایه افتاد و در دم جان سپرد. فردای اون روز وقتی که پسرش به زیر زمین اومد دید کیساهای تلا کمه به خاطر همین فریاد زد باز خابیدی و کار نکردی؟ ببین به من چقدر ضرر میزنی پیر مرد نادون اما صدایی نیومد تلافروش زمین رو نگاه کرد و دید جنازه پدرش در کنار بشکه افتاده مرد یک لحظه جا خورد اما چیزی که براش مهم بود بشکه ساز بود زود از چارپای بالا رفت تا ببینه مبادا در کار بشکه جادویی اشکالی ایجاد شده باشه وقتی دید همه چیز مرتبه خیالش راحت شد همسرش رو صدا کرد و با کمک او جنازه پیرمرد رو از زیر زمین بیرون بردن بعد دستور داد تشریع جنازه باشکوهی برپا کردن و پدرش رو به خاک سپرد وقتی از سر خاک برمیگشتن با خودش گفت افسو. پیره زود مرد آلا حالا ها میتونست کار کنه دیگه کسی رو ندارم که از بشکه طلا در بیاره حالا باید خودمو زنم به زحمت بیافتیم وقتی به کاخ رسیدن یه راست سراغ زیر زمین رفت تا ببینه پدرش شب گذشته چقدر سکه جمع کرده داشت سکه ها رو میشه مرد که یه چشمش به موش سیاه و چاق و چله افتاد که روی کیسه های تنها جست و خیز میکرد با خودش گفت این لعنتی دیگه از کجا پیدا شده نکنه کیسه ها رو به و کار من زیاد کنه این بود که بلند شد و به طرف موش دوید تا اون رو بگیره ولی مگه آقا موشه از این کیسه به اون کیسه از این طرف زیرزمین به اون طرف زیرزمین میدوید و ارباب رو هم به دنبال خودش میکشید ارباب حسابی عصبانی شده بود دیید اینطوری نمیشه برای همین چوب بلندی برداشت و دنبال آقا موشه کرد و حالا و کی بدو موش از ترس چوب به گوشه دیوار خزید اما ارباب در حالی که با خشم به طرف اون میدوید، نزدیک و نزدیکتر می شو. آقا موش دید چه کار کنه چه راه فراری پیدا کنه که چشمش به بشکه افتاد زود پرید توی اون ارباب که هنوز متوجه نشده بود چه اتفاقی افتاده با عصبانیت از چارپای بالا رفت تا موش رو از داخل بشکه بیرون بکشه که ناگهان چشمش به صحنه افتاد که در جا میخکوب شد. بله دوستان حالا بشکه به جای سکه های طلا پر از موش های سیاه و چاق و چله شده بود. موشهایی که در هم میلولیدند و سعی میکردن از بشکه بیرون بیاد و به این ترتیب ارباب دچار گرفتاری بزرگی شده بود. باری مرد خودش رو وحشت زده کنار کشید و از چارپ پایین برید اون، وقتی دید موش ها دسته دسته از بشک بیرون میان با خودش گفت اگه چاره‌ای پیدا نکنم همه شهر رو موش بر می‌داره. اینو که با عجل مشعلی رو که به دیوار بود برداشت. موش ها با دیدن نور و حرارت آتش فرار کردند. ارباب به طرف بوشک دوید اون در حالی که از وحشت حالت دیوونه ها رو پیدا کرده بود. نزدیک بشکه شد و مشعل رو به داخل اون پرد کرد تا موشها رو از بین ببره اما ناگهان همه جا آتیش گرفت. بشکه مثل یک کوره آتیش بیرون میداد آتیش شعله کشید و در یک چشم هم زدن همه زیر زمین رو گرفت مرد با وحشت عقب عقب رفت همه جا آتیش بود و گرمای خفه کننده فضای زیرزمین آور شده بود و مرد نمیتونست نفس بکشه او نقای به دروبرش کرد آتیش هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد در این حال چشمش به کیساهای طلا افتاد که گوشه ای روی هم تلمبار شده بودند. مرد به اون طرف دوید و پشت ها پنهون شد آتیش به سکه ها هم رسید و اونها رو مثل آهن گداخته داغ کرد گرمای آتیش و حرارت طلاها تن او رو میسوزوندند نفسش دیگه تنگ شده بود سرش گیج رفت و بر زمین افتاد و دیگه چیزی نفهمید وقتی به اوش اومد همه چیز از بین رفته بود کاخ کیسه های طلا درشکه شش اسبه و خلاصه اینکه هیچ چیز باقی نمونده بود انگار همه چیز مثل یک کابوس وحشتناک بود به خودش اومد اما اون کجا بود خوب دوروورش رو نگاه کرد بله اون در همون کلبه کوچیکی بود که روزی به بشکساز فقیر و مهربون تعلق داشت